أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتهية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الأبد الأمجد والرسول المثدد الذي ثمن في السماء بأحمد وفي الأرزين و أبو القاسم المصطفى محمد صلح. صلوات الله على ابن أمه و بسيه و اخيه الله الكبراء النبء العظيم النجم الثاقب اسد الله القالب قالب لكل قالب طالب مطلوب لكل طالب مزهر الأجائب و مزهر القرائب امام المشارغ والمغارب الذي هب فرز على الحاضر والقائب مولانا ومول الكونين قبل الحسنين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و قرة عین الرسول حجت الله الهجج، ولیت الله الازماء اسمت الله الگبراء أم الصادات النجباء والنقبا النقباء فاطمت الزهراء و سبت الاکبر محمد حسن ابن علی المشتبا و علا ساکن کر و علا زبیه بالغفا منتحر رجای حسین ابن علی سید الشهداء ابن الحسین ذین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسى ابن جعفر کاظم و علی ابن رز المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الاسکری و صلوات الله على حجت الله و الله روحی و العالمين العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهن سی یوم الاول و الثانی و رابع و خامسا و عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعدن و شمرا و آل سفیان و آل زیادن و آل مروان الى یوم القیامه. جهت سلامتی و در فرج موفور و سرور حضرت بقیه الله العظم ختم فرمایید. سوم سلوات رو جهت شادی عرباه طیبه شهدا مخصوصا شهدای کربلا اموات و گذشتگان از این جمعت شیعیان و محبین امیرالمؤمنین، هر کس که یک یا علی گفت و دستش از دنیا گوتاش و, و ما پدر بنده حقیق ختم فرمایید سلوات رو جهت شادی قلب نازنین مولای ما حضرت علی ابن موسر رز المرتزا و پدر و مادر بزرگوارشون ختمه فرماییم تبریک ارز می‌کنم از جانب خودم اصالتن و از جانب شما میلاد مفور و میلاد موفور و سرور آقامون مولامون نور قلب و چشمهای ما از سلطان علی ابن موسر رزال مرتزا علیه آلافت دهیت و سنا رو خدمت حضرت بقیت الله العظم الله تعالی فرجه و شریف خب دیگه بچه که غالبا مشهدی هن و الان این جمعی شاله هستن و میان نور امام عالم رو گرفته وجود مقدس حضرت علی ابن موسر رزا از همون زمان در زمان خلافت معمون ملعون به واسطه سیاست میگه ادو شود بعضی وقت سبب خیر گر خدا خواهد. سکه ضرب کرد به نام آقا و روی سکه ها زد از سلطان علی ابن موسر رزا. اما تفلکی نمیدونست که واقعیت مطلب اینه که حضرت سلطانه. چه در ملک چه در ملکوت چه در جبروت چه در لاهوت اما یک واقعیت دیگه که بخوام عرض کنم خدمتتون اون و حضورگار ما میفرمود فرمود این که مولا آقای امام رزا علیه السلام سلطان اسما و صفات الهی است و هر کس در عالم تا امامت امام رضا رسید یعنی علی ابن موسی رضا رو به عنوان هشتمین ولی خدا شناخت تا دوازده امام رفته عاقبت بخیره چرا حضرت میفرماید که کلمت لا اله الا الله حسنی تو نیشابور فرمود دیگه این مردم نیشابور جمع شدن همه خیلی جمعیت زیادی بودن حضرت فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی خداوند متعال می‌فرماد اینکه کلمه لا هر کی توحید داشته باشه وارد یه قلعه‌ای میشه محصور میشه فمن دخل حسنی، امن امن عذابی عذاب نمیشه اما حضرت فرمود به شرطها و شروطها ها آهان حالا شرط داشتین توحید و حضرت فرمود و انم من شروع دا. من علی ابن موسر رزا شرط قبولی توحیدم چرا ما امامی داریم شیش مامی داریم پنگ مامی داریم چهار مامی داریم خود اینا زیدیه میشه شه میشه آقا فرام میگه آقا اینا که محبه علی هم باشن نجات پیدا نمیکنن؟ نخیر ما اینجایی که میگیم محب علی نجات پیدا میکند بله اون یهودی هم که محبت علیابن ابیطالب و داره عاقبت نجات پیدا میکنه به لطف علی اما چه نجاتی ما وقتی میاییم حرف از محب میزنیم میگیم ما محبیم با شیعیان متفاوت میشیم میگیم محبی که قائل به ولایت دوازده امامه ولی غیر این که اصلا ما تحریف در این محبین نداریم حالا حال ابتدا یه ذرخ خواستیم از امامرزا بگیم راضی به امامرزا خیلی میشه حرف زد اما ما دوست دارم بحثمون رو ادامه بدیم پهیم سر بحث خودمون حالا شاید دستاتش گوریشی هرچی رزقمون بود حالا پیدا میکنیم توکل به خدا بحث ما در ادامه خطبه متقین در اون مقدمه ای بود که حضرت فرمودن که هم هم. خدا رزق رو بین و داشت تقسیم کرده اومدیم گفتیم رزقم یعنی چی؟ چه چیزایی رزق رو زیاد میکنه تقریبا یازده بله. مورد رو هم عرض کردیم یازده مورد رو هم عرض کردیم یه مقدمه کوچولوی دیگه حضرت قبل از این بیاد صفات متقین رو بگه می‌فرما اون یه دونه مقدمه چیه حضرت می‌فرمایند و وضعهم من دنیا مواضعهم خدا هر چیزی رو سر جا خودش قرار داده یعنی چی یعنی عدل عدل یعنی چی مناش. یعنی وضع الشی فی موضع یه یعنی چیزی رو سرجاش قرار دادن به این میگن عدل اگه توی شرکتی یه کسی واقعا در یه مدیر باشه بدارنش مدیر این عدله اما اگه در یه مدیر علم داشته باشه تجربه داشته باشه بفهمه بیارنش بدارن معاون این بیعدلیه که الحمدلله فراوونه دنیا فراوونه حالا نشته کجا نکته اینجاست که میفرمان وقتی حضرت بقییت اللہ ان زور الله کرد عدل رو برپا میکنه یعنی هر کسی میره سر خودش نه اینکه الان حضرت بقیۃ زور که کنه همه مثل هم بشیم و نه واسه چی مثلا شمایی که داری روزی 15 ساعت درس میخونی زحمت میکشی با منی که روزی یه ساعت درس میخونم باید یه اندازه باشیم کی گفته اونا در شرایط مساویو یعنی مثلا آیکیومون دری اندازه باشه این هم خودش خیلی ملاکه پناه هم همه مثل هم دیگه باشی امام زمان هم بیاد همین اتفاق میفته هرکی میرسه از خودش الان میگم آقا مثلا نگاه کن یه بچهی تو تهران میره بهترین دبیرستان ها درس میخونه بهترین مذهل راه دبیرستان محلم های خوب میبینه بیسار ساعته باش کار میکنن تست میزنه فلان میزنه بیسار میزنه خب بعد میره کنکور مثلا میشه نفر مثلا اول یه بچه توی دهاتی که هیچی نداره خب این شرایط اینو نداره دیگه خب این رتبه بالا این عدل نیست عدل اونجاست که همه شرایط برای همه یک جور محیا باشه و همه بتونن از شرایط استفاده بکنن و استفاده چه کردن چه نکردن گردن خودشونه اما شرایط برای همه مهیاس حالا توی اون شرایطی که برای همه مهیاه اگه کسی استفاده نگر تحصیل و کاهل صاحب خانه چیست آقا میاد شرایط رو برای همه یه جور میکنه میگه همتون میتونید بشید دکتر الان دیگه همه میتونن اما باز هم خیلی خیلی‌ها دکتر نمیشه میره شغل معمولی پیدا کارگر میشه قدرت تو توانشون نداره. بچه شما خیلی امکانات دارید و. تو تهران شرایط تو محیاطره تو منطقه که زندگی میکنید خانواده های شما شرایطشون محیاتره اگه توی این شرایط خوب درس نخور تثریر خودتونه. باور کن خیلی و اگر شرایط شما رو داشته باشن. باید من بعضی وقتا میگم میگم خدا رحمت کنه علمای بودوشه که مفتی شیخ طوسی نمیدونم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اجمعین اینا بی هیچی اون همه که مثلا اگه اونا الان مثلا این جام احادیس و جام تفاسی رو اینا رو داشتن چیکار میکردن چیا می نوشتن یه عالم این جام احادیس رو پیدا کرده بود تازه اومده بود پیرمردی بود این روایتی هستش این زد سندش اومد گفت تو این کتابه گفت آقا من هشت سال دارم دنبال سند این روایت هست میکردم بیچارها می, می کتاب می خوندن مالا. یه دقیقه یه این تر می زنیم هرچی روایته تو انواع اقسام سنده میاد اونا زحمت کشیدن این امکانات واقعا الان اینجوری ها نسبت به بعضی هست شهرستانوار شما پس این عدله عدل خدایی نگه هرکی سر هر جا خودش باشه الان مثلا یک بچه بیاد بگه که آقا این چه عدلیه مثلا ما تو سعادت آباد میشینیم تو شهرک میشینیم یکی نیاورون میشینه حالا بالاخره میرون بالاتر مثلا ویزداره این چه عدلیه واسه چی باید اونجوری باشه خب این عدله کجا عدله بگیم اگر همه یه شرایط محیا بوده باشد و پدر اون فرزندی که توآورون میشینه بیشتر زحمت کشیده باشه حقشه. باشه. به شاید که همه چی مهیا برا همه یه جور باشه، پس برا همین رفقا خیلی ساده نتیجه میگیریم که تقریبا در دنیا اطل نیست. کل مشکلات دنیا از اینه که هیچکی سرجا خودش نیست. اون کسی که باید آخون باشه آخون نیست. اون کسی که نباید آخون باشه آخونده. اون کسی که باید دکتر باشه دکتر نیست. اون کسی که باید دکتر نباشه دکتره. اون کسی که معلم نباید باشه میشه معلم. همه چی می روده به هم دیگه. مثال مثلا توی که اصلا نباید آخون باشی در این... جایگاه نیست یکی مثل من که اهل تقوی نیست احل مراقبه نیست و میاد آخون میشه میاد میشینه روی منبر رسول الله حرف میزنه هیچی هم بلد نیستم هیچ یه جماعت مثل خودم گمراه میکنم بسر جام نیست این بی اطلیه دیگه را یاد نکردم اما اگر این نباشه یعنی هرکی تیز در جا خودش نباشه خدا قرار داده ها ما داریم میدیدیمش به همه خدا همه رو سر جا خودشون قرار داد ما ریختیم به هم. از کجا ریختیم به هم؟ از سقیفه ریختیم به هم. از ریختن به هم. امام هجاش ورداشتن دیگه آلم ریخ به هم. ریخت به هم. تو رو چه به اون جایگاه تو باید میرفتی. غاز میچه روندیم. سنده اومد رفت بالای منبر رسول الله گلسه اول گواهی مردم من از همه شما بدترم ولی خب دیگه اینجا نیشستم دیگه این اوبک بغدادی هم همین خطور خونده بود اولین خطبه یه که آره همین خود خونده بود من از شما همون خطبه یه که اون خونده بود این خونده بود من از همه شما بدترم خودشو هم میدونستم امامت جاشوهر داشتن. نداشتن امامت. می اگر علی و اولاد علی امامت می مردم با عبر جا به جا می شدن. نقل مکان می کردن. اگر علی و اولاد علی بودن امامت می بر مردم. امامت کردن و خلافت هم می کردن. چون مقام امامت که کسی نمی تونه بگیره منتصبه از خداست. مقام خلافته که چهارتا تا هم می گیرنش. هرکی هم خلافت تو گرفت یه مشکلی داره که من الان نمیگم چیه روایت ها شما هم میدونید چیه خدا رشه اونه که نمیدونه از اونه که میدونم بعدم بپرزن روایت ها خودم نمیگم هریکی تکیه زد به جای امام محسوم یه مشکلی داره مشکل زیاد داره یاد اونش خیلی مشهوده امام ها جاشه ما پت فرداشتیم ولی خدا گذاشته بود سر اگر خدا پس بگیم آقا چرا همه مثل هم نیستیم؟ یه ایر... دو تا ایراد پیش میاد. اولاً این که چی؟ آقا جامعه احتیاج به مشاغل و در واقع جایگاه مختلف داره. خب نمیشه که همه دکتر مهندس باشن. آقا اگه همه دکتر مهندس باشن که بنده بشه؟ که نونوا بشه؟ که قصاب بشه؟ کی چپون بشه؟ اگه همه دکتر بشن خب کی میاد اسخالرات در خونه مردم ور داره ببره؟ شهرو بو که اینم حکمت خداست که همه نمیتونن یه جور بیام مثلا بالا البته میتونن خودشون تلاش نمیکنن. حرف نکنیم مثلا دکتری منصب خالی بالا یا امیرالمؤمنین علم اول و آخره علم این دانشگاه جندی شاپور تو جنوب ایران اون موقعی دانشگاهی بوده دانشگاه جندی شاپور که تقریبا بزرگترین یا اون دوره بوده. دانشتو تربیت میکرده این دانشگاه جندی شاپور از امیرالمؤمنین دعوت میکنه که شما تشریف بیار دانشگاه ما ریاضیات تدریس کن طب آقا سرامد علم صرف و نف مقدمش امیر المؤمنین. خط کوفی مقدمش امیر المؤمنین. توی مدینه تشریف ببرید حالا یادم مکه بود یا مدینه بود فکر کنم مدینه بود مدینه بود بیرون مدینه یه جایی هستش معروف به ابعاره علی چاه های علی آقا اونجا هر چی چاه می‌زنی آب شور می‌زنه بالا هفت تا چاه امیرالمومنین گنده آب شیرینه علم امامت چه دیگه امیرالمومن ولی میره چاه می‌کنه فکر نکن مثلا شغل پایین شد طرف ارزشش پایینه نه. به چشم اجوری یا سوی خلق دیده مکن که اولیا خدا ممکن است در او باش. این دلیل نمیشه فکر کنی ما شغل کسی پایین بود آدم پایین نه. شاید همین سپوری که میاد سر کوچه شما آشغال جمع میکنه و شما بهش نگاه نمیندازی از ابرار امام زمان باشه از کجا میدونی از کجا میدونی ما همیشه فکر میکنیم که اولیاء خدا یه قروفری دارد. نه اینجوری نیست برعکس اولیاء خدا قروفری ندارد. قیروفر برای اون کسایی که ولی خدا نمیشه میخواد یک قیروفری در بیاره بگه من ولی خدام عدایی بگیره چه میدونم قبضی بگیره برای خودش یه جایی مثلا دستی دراز کن و بیاد ما چی بکنید دست ما رو نمیدونم دستی سر مردم به دوستان میگفتیم آز آقا این مشهد که جای شما خالی رفته بودیم ای رد میشدیم این هردم میگفتن سلام آقا جان سلام آقا به میگفتن به این دوستان گفتن انقدر آقا جان آقا جان بخی که من مستن من دارو باورم میشه آقا جونه آقا نیستیم عدا داریم در میاریم من دارم عدا در میارم جامعه مشاغل مختلف میخواه پس اگر عدل خدا نباشه این شغل به هم میرزه. چی می‌خوامم کارار رو جمع کن نمیشه. عدل خداست. که مشاغل مختلف باشه اما دلیل نمیشه که شغلی که پول زیادی داشت منصبم داشته باشه نزد خدا. ان اکرمکم اند الله اتقاكم بهترین شما پیش خدا دکتورا نیستن آیت الله ها نیستن مراجع تقلید نیستن مهندسان، ها کی تقوی پیش کنه بهترین شما پیش خدا هست فردا شاید امام زمان انشاءالله ظهور کنه بعد نیمیم معلوم نیست و مثلا میگم شاید نگه آیت الله فولانی آیت الله فولانی آیت الله یه جوون ایفده ایجاد بیا اینجا به سرم بله آقا جام شما مسئول لشکر اسلامی در شرق کره زمین از کجا میدونی؟ یه بچه 14 ساله نشه شاید اون تقوی رو آیت کرده مگه تقوی به مگه تقوی به مسجد اومدنه؟ مگه تقوی به حیعت اومدنه؟ تقوی اون کسی داره که اومد حیعت اومد مسجد گناه نکنه اومد مسجد و حیعت و بعد گناه کرد رفت بالا تو مسجد جمع میشن غیبت میکنم بعضی وقتا. تو هیئت جمع میشیم غیبت میکنیم بعضی وقتا. دیدی فلانی چیکار کار کرد؟ چه کاری بود کرد آخه؟ آه تو چه تو هیئت؟ به تو چه ربطی داره؟ تو قیبته دیگه؟ این حیعت هم برای من برای ما موسیقی نیست برای اینکه که خودم بیا منی هستم من منم این نکرم کن پس برای دارم عدل خدا حکم میکنه که مشاغل مختلف باشه اما به اون کسایی که شغل ضعیف دارن به چشم خاری نگاه نکنید دکتر مهندسا رو تحویل مثلا بگیرید سپور محلتونو تحویلین یه کارگر سادهی که لباس داغون خدا رحمت کنه مرحوم کربلایی حسین تهرانی رحمت الله علیه از اولیا خدا بود خدمت شیخ رجبالی خیاط میرسید آدم خاصی بوده داشت مشتی بوده بعد از اینایی بوده که داغون بوده تو بازار تهران اماموسه میخردش اماموسه میخردش یه گدایی بود سر بازار انقدر لباساش کهنه شده بود که تور شده بود بعد از بدنش از زیر این لباس معلوم بود بعد مردم مثلا کمک میکردن کمک نمیکردن گدائی میکرد یه بار در کشف و شبود به من نشون دادن که این از اولیه خداست گفتم خب چرا باید این گدائی میکنه گفت خدا این رو قرار داده که مردم به واسطه یه صدق دادن به این بلا خدا از سرشون رفت کنه از اولیه خدا بود کربلی واسی میگفت تیول ارز داشت بعدها من فهمیدم تیول ارز داره زیارت میره فلان میرم جذاب جذاب میگاد از کجا میدونن گدایی که میاد تو حرممون روزا میگه به من کمک کن از اولیا امام رضا نباشه از اونایی نباشه من دیده بودم تو حرم امام رضا میم یه سید اومده بود که نشسته او بالا سر حضرت اول رو کرد به حضرت صحبت کرد صحبت کرد بعد در گوشه یه چیزی گفته اتم من گرفت در گوشه اونجا چیزی گفته من گرفت داره بوشه ایم. پول هره گره گفتم یا همام ردار این رو چجوری دادی من رو داره حضرت اول با حضرت حرف زن میگه مؤمنون کیا قد افله المومنون الذین هم فی سلاتم خواهش یه جان میگه و حقون معلوم لسائل والمحروم شما پولی که میدی فقط داره سا... ببینی سائل اونیه که میاد میگه آقا به من بدبخ کمک کن همین کربلای حسین اداشت پرسده بودن که کربلا حسین تهرانی آقا چیه اینایی که میان بعضی دروغ میگن چجوری؟ بگو به تو چه که این دروغ میگه؟ دروغ نمیگه این دست رو دراز کرد یا نه؟ ولا به دروغ دراز کرد تو بده تو وزیفت اینه که فهمه ساله؟ ساله رد نه اما محروم چیه؟ محروم اینه که با سیلی صورتش رو نمیاد بگه به من ولی نداره اونجا باید بری تحقیق کنی ببینی کی محرومه بری بهش کمک کنی به خدام و اینا داستان نیست و من دیدم از این اولیای خدا استادی داشتم من در کیش در چیش؟ حالا میگم چیش؟ حالا مثلا میکنم تو کیش ما. ما در کیش ولی خدا دیدیم در کیش ولی خدایی دیدم که هنوز جای دیگه ندیدم ندیدم بعد نماز مغرب شد دست منو میگیر میگه بریم چایی گفتم کجا بریم محمد اممم اخوندم نبود نکنید نکرد اخون بود اخوندم نبود بیا بریم میرفت توی مغازه ایشون تخممر میگرفت 29 میگرفت رقم میگرفت میگرفت میرفتیم یهو یه, می یه, می می می می یه جایی یه خونه یه داغونی بعد یه موقعت انداخته بود بابا فلج پنج تا بچه بعد برای اینا قضا درست میکرد. بعد به اینا احکام یاد میداد. میگفت دخترو احکام شما اینه. بعد مثلا اسماشون بعد یه داغ بود میگفت تو چرا اسم خوب نداری اسم خوب چی دوست داری میگفت مثلا اسم خوب زینب میگفت من از وقت روزینب صدا میکنم گفت من اسمم زینب بعد بهشون نماز یاد میداد آخرش هم دست میکرد دو جیبش نگاه نمیکرد چقدر من دیدم والله دیدم ها میذاشت میرفت بعد میگفتم قداما با خبا ماشین بریم میگه دیگه پول ندارم قداما جا من تاکسی میکنم بیا با ماشین بریم اینم رو چجوری بیاده بریم تا خونه او اگه تسبی داشت این بچه هاش رو همه رو خدا یه تسبیح داشت تسبیح که مال استادش بود استادش خیلی آدم عجیب غریبی بود استاد علی آقای حسینی پناه من سر قبرش زیاد میرفتم خدا رحمتش کنه از اولیای خاصی بوده حالا نمیخوام داستانش اونو براتون تعریف کنم که داستان جالبی داره تسبیح مال استاد بود خیلی تسبیح استاد عزیزه خیلی عزیزه اونم استادی که از اولیا بوده تسبیح رو داد پی این مرده من فرداش میدادم تو سرم حاج آقا من میدونستم تو می اینقدر انقدر رو راحت هدش میگذری من میگفتم بده به من تشبیه ولی الله رو دادی یه ولی خدا رو دادی رفت به همین راحتی میگذشت به سوالم میداد میبخشت حق معلوم لسه سآل هم خوب بود هی میداد هی میامد میداد می خودش که می گفت استاد ما نمیدونم از کجا پول میومد؟ فقط میگه یه یهو براش مثلا یه صندوق پول میم پر دلار می گفت یه بار رفت کوچه خرید واجه آقا کوچه خرید تو این شرک های نواس حالا کجا نمیدونم؟ میگه رفت یه کوچه خرید خونه ها رو داد به این عرست مادایی که ندارن و جهده های همه دختراش رو خرید ولی میگه فرش خونش ماشینی بود قد افلح اینا خوش به حالشون میشه داداشون به عدو اصول نیست هزار نکته باریک تر زمون اینجاد. نه هرکه سر به تراشت قلندری نه کسی که اومد ول از و انقدر کشید که خط ترمز پیکان انقدر نباشه اینا نیست اون چیزی که به درد من و شما میخوره اینجاست قلب سلیم الا من اطلا به قلب سلیم بریم قلبمون رو درست کنیم یه شبه نمیشه من جی روز نمیدونم به کدومت دوستان میگفتم گفتم من نمیام حیعت نعوض من از همه شما گناهکارترم ترم وله بله تلاه قسم من از همه شما گناهکار برای من ادا دارم گناه میکنم شما اگرم گناه میکنید عدا ندارید قیافه ندارید اما من در دو گفتم من نمیام هیئت برای اینکه که کنم این بچه ها درست بشن اومدم با هم یه چیزی بشیم ما اومدیم با هم دیگه متصل بشیم به ولی الله العظم. ما اومدیم با هم به هم کمک کنیم من به تو تو به من به همدیگه کمک کنیم برسیم به ولی الله بشیم اون چیزی که امام رضا میخواد بشیم اون چیزی که امام رضا میخواد میشیم و به هم کمک کنیم میشیم پس اول اگر عدل نباشه که این همه مشاقل پیش نمیان بس مقدمه این مشاغل مشاقل عدل خداست. اگرم بشه اگرم بشه که مثلا همه به قولی ها گفتن یه جور باشن که این میشه ظلم که. اگر این ظلمه. اگر الان همه ما و هم مهندس بشیم بعد مثلا من 15 ساعت درس بخونم شما دو ساعت خدا خداوکیلی من نمیگم آقا این چه بعدشه این دو ساعت درس خونده شده مهندس من 15 ساعت الان مثلا دانشگاه خداوکیلی دانشگاه آزاد مثلا طرف میره بعضی وقتا مثلا یه جزوه بهش میدن میام مثلا برو تا سوال میخونه میاد استاد مثلا از اون 50 تا بیست تاشو علامتم میداره میگه تاش میاد میره بعد میخونه میشه 18 بعد بنده خدا میره دانشگاه شریف 500 تا کتاب رو میکنه تحقیق میکنه بعد مثلا میشه اونم میشه 18 روز خب عدله بعد جفتشون لیسانس میگیرن لیسانس برق آقا شما چی داری؟ بنده مهندس برقم؟ من بگه شما چی بریم؟ من مهندس برقم عطل نیست دیگه اگر این ظلمه اگر همه یه جوری هم بشن تازه اینجاست که ما داریم ظلم میکنیم خداوند متعال میفرماد عوضو بالله من الشیطان الرجیم وان لی انسان الا ما و النساعه سوف يرو انسان غیر اون چیزی که تلاش کرده هیچ نداره فردا قیامت همون هم چیزی که تلاش کرده رو میبینه فکر نکن فردا قیامت چیزی بهت نشون میدن گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل قافل مشو حواستون بهین حرف دن و بچه بچه ها بچه بدترین مطلب برای سن من و شما میدونی چیه غذبه اینکه عصبانی بشیم اینکه سر هم دیگه داد بزنیم و عصبانی بشیم و با هم دعوا کنیم بدترین چیز برای من و شما تو سنه من و شما قذابه می فرمود چی؟ می که عوض بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذررتن خيرا یره فمن يعمل مثقال ذررتن شرا یره آقا مثقالی خیر کنی می بینیش یورا همونجا می بینی تلاشت رو پیدا می اونجا بس باید تلاش کنیم من میخواستم اینو امروز خیلی ساده بگم برم سراغ ان کیف المتقون هم اهل الفضائل طول کشید ببخشید بنا نداشتم اینو تو شرح استیاد حرف بزنیم میخواستم هنوز وارد خطبه نشدیم یعنی تو خطبه ما مقدمه شروع نشده ولی خب هفته آینده اگر اون باشه فالمتقون هم اهل الفضائل اول نشونه اهل تقوا اینه که اهل فضائل با فضیلت حالا فضیلت چیه؟ خیلی حرف داره فکر میکنم اون چی دیگه من از روایات درآوردم به استثناء مقدماتش بله سی چهار مطلبه اگه تون بگیم ده چلسهی تموم میکنم ولی اگه مثل این دوباره من حقیل مطارم داغ بشه متاسفانه خیلی محف داریم. پس آقا فهمیدیم خدا هر چیزی رو سر جاش قرار داده چی ریخته به هم اما اون ریشه به هم ریزی منبع به هم ریزی اون ملعونی که همه عدل عالم رو به هم زد در سقیفه بود امام رو از جایگاه خلافت برداشتن بیچاره کردن آل... خدا حفظ کن حضرت آیت الله. آقا مرتضای تهرانی رو میفرمود آقا هر گناهی که در عالم داره رخ میده و رخ میدهد به گردن اولی و دومیه لعنت الله علیه هر گن... چون نذاشتن امام امامت کنه دیگه امام مظلوم ما رو برداشتن از مدینه آوردن حالا خدا رو شکرت پس لاوزات ما امام رضا داریم. ولی امام مظلوم بود. قریب الخورباس علی ابن مزرزا. ما امشب پنا روزخونی نداریم. ولی من یاشید بهتون بگم. سنگینترین روزه های عبدالله رو امام رضا خونده. حتی امام زمان در ناهیه مقدسه به سنگینی امام رضا صحبت نکرده برای روزه. چیزهایی گفته امام رزا. که به غیر از ظهر آشورا به نظر بنده جفاس گفتنش جفاس گفتنش سلام بدیم به امام رزا من روضا هم نمیخونم دیگه دوستان هر طرف خواستم برم برم ولی من سلام رو میدم با هم سلام بدیم ایشالا محصر سید و این سلام ما یادتون نرا الان ما نمیخواییم سلام بدیم ما الان داریم جواب سلام سید و را می دیم. الان سید و دونه دونه اسم برده گفته فلانی سلامون علیک فلانی سلامون علیک فلانی سلامون علیک الان من و شما اجازه داریم السلام علیک. یا بابا للارواح التي لاث الثناء عليك مني سلام الله بذا ما بقي تا الليل وَلَا جَالَوَ اللَّهُ خِرَ الْأَهْدِ مَنِّي لزيارتكم من السلام على وعلى عَلَى الْخُسَابَ وَأَلَى الْأَلِيَ بْنَ الْخُسَابَ حسین و الا اصحاب حسین السلام علیکم رحمت الله و برک